قصده های صحبی به روایت فضلالله محتدی ارائه شده از کانال هزار افسان. روایتگر پریسا سائدی این داستان به امر شاه ماهی روزی بود و روزگاری بود پیرمردی بود که سه تا پسر داشت. دو نفرشون دانا بودن و یکیشون نادون. اسم اون نادونه یملیا بود. اون دو برادر کار میکردن و یملیا از صبح تا شب کنار بخاری می و از هیچ جا خبری نداشت. روزی برادرها به بازار رفتن و زنهاشون به فکر افتادن که از یملیا کار بکشن. یکی گفت یملیا آب بیار. حوصله ندارم. بورو، وگرنه برادرات که از بازار برگردن چیزی برات نه. خب میرم یه بلیا از کنار بخاری بلند شد و کفش بپا کرد و لباس پوشید و سطل و تبر را برداشت و رفت به طرف یه خونه یخ رو شکست و سطح رو پر از آب کرد از شکاف یخ نگاه کرد و ماهی دید با احتیاط دست پیش برد اون رو گرفت و پیش خودش گفت سوپ ماهی خوبی داری. یکو ماهی به حرف در و به زبون و آدمی زاد بهش گفت یملیا منو آزاد کن. یک روزی به دردت میخورم. یملیا خندید و گفت تو به چه کارم میخوری؟ نه. Nah, بهتر تو رو به خونه ببرم و به زنها بگم سوپ ماهی درست کند نمیدونی چه سوپ به خوشمزه میشه. ماهی باز با التماس گفت یملیا آی یملیا بلم کن. هر چی بخوای برات انجام میدم. یملیا گفت: خیلی خوب. اول ثابت کن که فریبم نمیدی بعد ولت میکنم. ماهی از اون پرسید: یملیا بگو همین حالا چی میخوای؟ یملیا گفت: میخوام که سطلام خودشون به خونه برن و آبشونم نریزه. ماهی به اون گفت: این حرفا رو به خاطر بسبر، هر وقت چیزی لازم داشته باشی بگو، به امر شاه ماهی و به میل من فلان و فلان و اینا رو یم گفت: به امر شاه ماهی و به میل من ها خودتون به خونه ببرید. تا این حرفو گفت ها سینه تپه رو گرفتن و بالا رفتن. یم ماهی رو ول کرد توی آب و خودش دنبال سطل‌ها به راه افتاد. ها توی دهکده میرفتن و مردم تعجب می‌کردن و یلمیا از عقبشون میدوید و خندید. سطح وارد کل شدند و رفتن سرجاشون و یملیا هم رفت سرجاش کنار بخاری خوابید. چیز نگذشت که تازه عروس های خونه یعنی زن های دو برادرش به اونا گفتن یملیا یملیا چرا خوابیدی برو هیزم بشکن؟ حوصله ندارم. ببین اگر هیزم نشکنی برادرت از بازار بر میگردن و برات هیچ حدیه نمیارن. یملیا میل نداشت از کنار بخاری بلنچه اما ماهی به یادش و آهسته گفت به امر شاه ماهی و به میل من ای تبر برو و هیزم بشکن هیزم ها شما هم خودتون بیان توی کلبه و توی بخاری جا بجاشه تبر از سر جاش پرید و رفت توی حیات و هیزم ها رو شکست هیزم های خرد شده خودشون اومدن توی کلبه و توی بخاری قرار گرفت چیزه نگزه عروس باز گفتن یملیا دیگه هیزم تو خونه باقی نمونده برو جنگل و هیزم تهیه کن یملیا گفت شما چرا ولم نمی کنی؟ زنها گفتن این حرفا چیه؟ مگه ما نباید به جنگل برای تهیه هیزم بریم؟ حوصله ندارم خیلی خب اگه حوصله نداریم منتظر هدیه برادرها هم نباش چاره نبود یه لیا از کنار بخاری بلند شد و کفش بوشید و لباس به تنش کرد و تناب و تبری برداشت و رفت توی حیاتو در سورت نشست و گفت زن ها یالا دروازه رو باز کنی عروس ها به اون گفتن احمق این چه کاریه؟ چرا اسب به سورت به اسب لازم ندارم عروس ها دروازه رو باز کردن و یه لیا حسه گفت به امر شاه ماهی و به میل من سردمه بر جنگل سورتمه اجاش تکون خورد و از دروازه گذشت و چنان به سرعت حرکت کرد که اصفا به گردش نمیرسید برای رفتن به جنگل مجبور بود از وسط شهر عبور کنه برابرین مردم زیادی رو زیر گرفت و زخمی کرد مردم فریاد می‌زدند: بگیریدش بگیریدش ولی اون به سرعت می‌رفت و کسی به گردش نمیرسید تا به جنگل رسید و گفت به امر شاه ماهی و به میل من ای تبر درخت خشک انتخاب کن و ببر. هیزم ها شما هم خودتون بیاین توی سرسمه با تناب بسته بشین. تبر شروع به کار کردن کرد و درخت های خشک رو برید و هیزم ها خودشون اومدن توی سرسمه و تناب هم ها رو به سرسمه بست. بعد یملیا امر کرد تبر. چمکی گنده ای که آدم به زحمت بتونه بلندش کنه برای خود اون ببره و روی بار نشست و گفت به امر شاه ماهی و میل من سرتمه به سمت خونه برو سرتمه با سرعت راه خونه رو پیش گرفت باز هم یملیا ناچار از اون شهری که مردم رو زیر گرفته و زخمی کرده بود گذشت مردم هم منتظرش بودن از روی بار پایینش کشیدن و دادن و زدنش یملیا دید هوا پس آهسته گفت، به امر شاه ماهی و به میل من ای چماق مشغول به کار شو، به پشت و پهلوی اینها خدمتی بکن. تا اینو گفت، چماق عجاب بلند شد و به پشت و پهلوی اونها فرود اومد. مردم فرار کردن و یملیا به خونه اومد و رفت کنار بخاری. چیزی نگذشت که آوازه کارهای یملیا به گوش پادشاه رسید و یکی از افسران خودش رو فرستاد، که یملیا رو پیش اون بیارن. افسر به اون ده رسید و وارد کلبه ای که یملیا مسکن داشت شد و پرسید یملیای ابله تویی؟ یملیا از کنار بخاری جواب داد به تو چه؟ زود باش، لباس بپوش تا تو رو پیش شاه ببرم. حوصله ندارم. اوقات افسر تلخ شد و یک سیلی به صورت یملیا زد. یملیا آهسته گفت به امر شاه ماهی و به میل من ای چماق دنده و پهلوی این مردک رو خورد کن. چماق عجب بلند شد و تا افسر میخورد زد و افسر با زخمی سخت به سختی تونست جونش رو به در ببره. پادشاه تجرب کرد که افسرش نتونسته بود از عهده لیا بر بیاد و بزرگترین سردارانش رو پیش اون فرستاد. گفت یملیای ابله رو به دربار من بیار و الا سرش رو میبرم. سردار پادشاه کشمش و آلوسیا ها نان شیرین خرید و به اون ده اومد و وارد کلبه شد و از اون زهن پرسید که یملیا چه چی چیزی دوست داره. عروس ها پاسخ دادن. یملیا ما دوست داره که نوازشش بدن و لباس سرخ به اون بخشوند. با اون وقت هر کاری بخواید میکنه. سردار بزرگ به یملیا کشمش و آلوسیا ها نون قندید و گفت ای یملیا چرا کنار بخاری خوابیدی؟ بیا بریم پیش شاه، یملیا گفت، اینجا جام گرمه، یملیا، یملیا، تو خونه شاه خوب میخوری و خوب مینوشی، بیا بریم پیش شاه، او ندارم، یملیا، یملیا، شاه به تو لباس سرخ هدیه میکنه، کلاه میده، چکمه میده، یملیا فکر کرد و فکر کرد و گفت، خیلی خوب، تو جلو بیا من از دنبالت می سردار رفت و یملیا قطر خوابید و گفت به امر شاه ماهی و به میل من ای بخاری برو به کاخ شاه. در این موقع گوشه های به شکاف برداشت و شیروونی جا تکون خورد و دیوارها ها فرود اومدن و بخاری جا کنده شد و خودش یک سر راه کاخ شاه رو در پیش گرفت. شاه از پنجره نگاه میکرد. تعجب کرد و گفت این دیگه چه چیز عجیبیه؟ سردار جواب داد این است. سوار بخاری شده پیش شما میاد. شاه سرسره شو و گفت ای یملیا، خیلی مردم و شکایت دارن. خیلی از مردم رو زیر گرفتی و مجروح کردی. یملیا گفت مردم چه حقی داشتن زیر سورس مبرم؟ در این موقع شاهصاد خانم ماریا از پنجره چشمش به یملیا افتاد. یملیا هم دید دیده آسته گفت به امر شاه ماهی و میل من، باید دختر پادشاه عاشق من بشه و بعد هم گفت ای بخاری برو خونه. بخاری برگشت و رفت به خونه و وارد خونه شد و در جای خودش قرار گرفت. یملیا هم همینطور کنارش خوابیده بود. اما در کاخ شاه فقان و فریاد بلند شد و اشک از چشمهای شاهزاده خانم ماریا روان شد. دلش برای یملیا تنگ شده بود. بدون اون نمیتونست زندگی کنه و از پدرش میخواست که زن یملیا بشه شاخ اول مخالفت کرد و راضی نمیشد بعد به سردار بزرگ گفت برو یملیا رو مردی یا زنده پیش من بیار و الا سرش رو میبرم. سردار بزرگ شربت‌های شیرین و خوراکی‌های های بامزه زیادی خرید و به اون ده رفت و وارد اون کل شد و یملیا رو دعوت به خوردن و کرد. یملیا تا تونست نوشید و خورد تا سیر شد و افتاد سردار بزرگ هم گذاشتش توی عرابه و پیش شاه بود شاه هم همون برد رو کرد که یک چیلیک بزرگ که تصمه های آهنین داشت درست کنن وقتی که درست کردن یملیا و ماریا رو در اون نشوندن و غیر اندودش کردن و انداختن تو دریا بعد از مدت یملیا بیدار شد و دید جاش خیلی تنگ و تاریکه بوسیت اینجا کجاست؟ به اون جواب داد یملیا جان بدبختی به ما رو آورده من و تو رو توی چلیک نشوندن و چلیک رو هم غیراندود کردن و به دریا انداختن یملیا گفت تو کی؟ من من ماریا دختر شاهم یملیا گفت به امر شاه ماهی و به میل من ای باد به و چلیک رو به کرانه خشک و خورنم بینداز باد تندی وزید دریا خروشان شد و چلیک رو در کرانه خشک بروی روی های زرد رنگ انداخت یملیا و شاهزاده خانم ماریا از توی اون زرف بزرگ حلبی بیرون اومدن و شاخصاد خانم گفت ای یملیا عزیز ما کجا زندگی کنیم؟ خوب کلبه کوچیکی بسازی یملیا گفت حوصله ندارم ولی ماریا اصرار کرد و بالاخره یملیا گفت به امر شاه ماهی و به میل من کاخی سنگی که بامی تلایی داشته باشه ساخته بشه. گفتن همون بوده و ساخته شدن همون. دروبرش باقی سبز و خورنم بود و گلهای معطر و پرندگان نقم سرا در اون دیده می شدن. شخصد ماریا و یملیا وارد قصر شدن و پهلوی پنجره نشستن. ماریا به اون گفت، ای یملیه عزیز، آیا نمیتونی کاری بکنی که جوونی زیبا بشی؟ اینجا دیگه یملیه فکر نکرد و گفت، به امر شاه ماهی و به میل خودم باید جوونی زیبا و قشنگ و خوشقد و قامت بشم. یملیه جوونی شد که وصفش از اخته زبان و قلم خارجه. روزی شاه برای شکار رفت و دید قصری بلند و زیبا که قبلا اونجا وجود نداشت برپا شده و گفت این آدم بیعدب که که بدون اجازه تو سرزمین من و در زمینهای من کاخ بنا کرده چند نفر را فرستاد که اهل قصر رو بشناسه فرستادگان دوان دوان رفتن تا به قصر رسیدن و زیر پنجره ایستادن و پرسیدن این قصر مال کیه؟ یملیا جواب داد به پادشاه بگیم به قصر من بیاد و مهمون من بشه. خودم به اون میگم. شاه به مهمونی پیش اونها اومد. یملیا به استقبال شاه رفت و اون رو وارد قصر کرد و سر میز غذا نشوند و یک جشنی آراست و خوردن و نوشیدن و شاه هم متحجب بود و بالاخره پرسید. ای جوان نیکوکار تو کی هستی؟ یملیا گفت. آیا یملیه ابله رو بیاد داری که به روی بخاری سوار شده بود و به قصد تو آمد و تو امر کردی اون رو با دخترت در چیلی که قیرندود بینشونن و به دریا بندازن؟ من همون یملیه هستم. اگر میل اراده کنم تمام کشورت رو می و با خاک یکسان شاه خیلی ترسیده و شروع به زاری و التماس کرد و عذرخواهی کرد و گفت ایملیه ای عزیز دخترم رو بگیر و تمام کشورم رو تصرف کن ولی من رو نکش. کار به اینجا که رسید ضیافتی برپا کردن و همه مردم رو دعوت کردند و یملیا با شاهزاده خانم ماریا عروسی کرد و سلطان کشور شد. بالا رفیم آرد بود، پایین اومدیم خمیر بود، قصه ما همین.